صفحه چهل و یک. بخش چهارم پس از سالهای بسیار، آلوریک به زمین باز می گردد. آلوریک و لیرازل از میان جنگل نگاهبان باز گشتند. لیرازل تنها یک بار دیگر به آنگلها و سبززارها که تنها در دور پروازترین رؤیاهای شاعران در جرفترین خواب دیده شده است، نگریست و سپس به آلوریک اصرار کرد پیش بروند و آلوریک راهی را برگزید که از میان درختان تلسم شکسته میگذشت فلیرازل نمیگذاشت آلوریک حتی برای گزینش راه درنگ کند و مدام اصرار میکرد از کاخی که تنها در ترانه ها از آن گفتهاند دور شوند و از پشت ردیف درختان بیفروغی که توسط شمشیر آلوریک قل و غم شده بودند، درختان دیگری در حالی که اندوهگین به یاران خود مینگریستند، که شاخهاشان افتاده و در هم ریخته بود و از جادو زدوده شده بودند، سلانه سلانه به سوی آنها حرکت کردند و هنگامی که نزدیک شدند، لیرازل دستش را بلند کرد و همه بر جای ماندند و دیگر پیش نیامدند، و همچنان به آلوریک اصرار می کرد شتاب کند میدانست پدرش از پله های برنجی یکی از آن برجهای های بالا خواهد رفت میدانست بزودی به, به ایوان بلندی خواهد آمد میدانست کدام افسون را به کار خواهد برد صدای گام هایش را که در میان جنگل تنین می انداخت می شنید. در تمام آن روز پریانه بیپایان آبی بر فراز هامون کنار جنگل میلغزیدند و بارها و بارها از بالای شانهش به پشت نگریست و به آلوریک اصرار کرد پیش بروند. صدای پاهای شاه پریان آهسته بر هزار پله برنجی پیچید و لیرازل امیدوار بود به صد شفق که آن سویش تار و دودالود بود برسند. هنگامی که برای صدمین بار به ایوانهای دوردست برجهای درخشان نگریست، دید که دری در بالای کاخی که تنها در ترانهها از آن گفتند، آغاز به گشوده شدن کرد. به سوی آلوریک فریاد زد. افسوس، اما در هماندم عطر گلهای سرخ از دشتهایی که میشناسیم به سوی آنان آمد. آلوریک خستگی را نمیشناخت، چون جوان بود ولی رازل هم آن را نمی شناخت چون پیرنا شدنی بود به جلو شتافتند آلوریک دست شاه دخت را گرفته بود شاه پریان دستش را بلند کرد و درست همان دم که آغاز به خواندن افسونی کرد که تنها یک بار میتواند خوانده شود و هیچ چیز در دشتهای ما نمیتواند در برابرش مقاومت کند در میان جبهگ شفق بودند و افسون سرزمینهایی را تکان داد و برهم ریخت که لیرازل دیگر در آنها نبود. هنگامی که لیرازل به دشت که میشناسیم نگریست که همان اندازه برایش غریب بودند که زمانی برای ما بودند سیبایی دشتها دلش را شاد کرد. از دیدن خرمن خندید و عاشق زرافت آن شد. چکاوکی میخاند و لیرازل با او سخن گفت و به نظر نمیرسید چکاوک سخن او را بفهمد اما لیرازل رویش را به سایر شکوه مندی های های ما کرد و چکاوک را از یاد برد شگفتانگیز بود که دیگر فصل استکانی های آبی نبود چون تمام گل انگشتانه در حال شکوفه دادن بودند و ماه مه رفته بود و گلهای سرخهای وحشی روییده بودند آلوریک نمیتوانست این ماجرا را درک کند صبح زود بود و خورشید میدرخشید و رنگهای ملایمی به دشتهای ما میداد و لیرازل در دشتهای ما از چیزهای معمولیتر از آنچه بتوان باور کرد از میان مناظر هر روزه زمین لذت میبرد با فریادهای شگفتی و خندهاش چنان خوشنود بود، چنان شاد بود که آلوریک از آن پس زیبایی در آلاله ها می دید که هرگز رؤیایش را هم ندیده بود و در گاری ها چنان با مزگی می دید که پیش از آن هرگز فکرش را نکرده بود. لیرازل هر لحظه با فریادی از کشفی لذت بخش گنجی را در زمین می یافت که آلوریک هرگز، دلپذیر نپنداشته بود و سپس هنگامی که به لیرازل مینگریست که زیبایی لطیفتر از زیبایی گل سرخای وحشی را به سرزمین های ما می دریافت که تاج یخیش آب شده است و به دین ترتیب لیرازل از قصری که تنها در ترانه ها می توان از آن گفت به دشت های آمد که لازم نیست از آنها بگویم چرا که دشت های آشنای زمین بودند و ادوار تنها دگرگونی اندکی در آنها به وجود می‌آورد و شامگاه با آلوریک به خانه اش رفت. همه چیز در قلعه ارل دگرگون شده بود. در دروازه با مردی روبرو شدند که آلوریک می شناخت. مرد از دیدن آنها شگفت زده شد. در راهرو و پای پلکان، با برخی از کسانی که در قصر کار می کردند روبرو شدند که با شگفتی سرشان را برگرداندند آلوری که آنها را هم می شناخت اما همه پیرتر شده بودند و دریافت که در آن یک روز آبیفام که در سرزمین پریان گذرانده است باید بیشتر از ده سال گذشته باشد چه کسی نمی داند که در سرزمین پریان این گونه است؟ و اما چه کسی همچون آلوریک با دیدن این که چونین شده شگفت زده نمی رو به لیرازل کرد و گفت چگونه ده یا دوازده سال گذشته است؟ اما درست مانند آن بود که مردی عامی که با شاهدختی زمینی ازدواج کرده بود به او می گفت شش پشیز گم کرده است. زمان هیچ ارزش یا معنایی برای لیرازل نداشت و از شنیدن درباره ده سال از دست رفته، آزرده نشد. حتی به خواب هم نمی‌دید که زمان چه معنایی برای ما دارد. به آلوریک گفتند، پدرش مدتها پیش مرده است و یکی به او گفت که چگونه شاد مرد بدون بیتابی با اعتماد به آلوریک در انجام دادن فرمانش چرا که از شیوه های سرزمین پریان چیزهایی میدانست؟ و می آنهایی که همیشه بی قرارند، باید اندکی از آرامشی را که سرزمین پریان برای همیشه در آن خفته است، به دست آورند. بر فراز دره، صدای کار کردن دیر هنگام آهنگر را می شنیدند. آهنگر همان سخنگوی آنانی بود که یک بار در آن اتاق بلند سرخ به نزد فرمانروای روای ارل رفته بودند، و تمام این مردان هنوز زنده بودند. چرا که هر چند زمان بر دره ارل هم همچون همه دشت هایی که میشناسیم میگذشت اما آرام میگذشت نماننده همه شهرهای ما سپس آلوریک و لیرازل به جایگاه مقدس نجات دهنده رفتند و آلوریک از او خواست آنها را با سنت های مسیحی عقد کند و هنگامی که نجات دهنده درخشش زیبایی لیرازل را در میان اشیای معمولی درون جایگاه مقدس کوچکش دید، چرا که دیوارهای اتاقش را با خیرت و هایی که زمانی از بازار خریده بود تزین کرده بود، ناگهان ترسید که مبادا از راسته میرایان نباشد، و هنگامی که از او پرسید از کجا آمده و او با شادمانی پاسخ داد سرزمین پریان، نیک مرد سمیمانه به او گفت که آن سرزمین از رستگاری به دور است. اما او لبخند زد چرا که در سرزمین پریان همواری بیهوده شاد بود و اکنون تنها به آلوری که همیت می داد. بنابراین نجات دهنده به سراغ کتابهایش رفت تا ببیند چه باید کرد. زمان درازی در سکوتی که در آن تنها صدای نفسهایش شنیده می شد مطالعه کرد و آلوریک و لیرازل در برابرش ایستاده بودند و سرانجام در کتابش گونه این مراسم برای ازدواج پری دریایی که دریا را ترک کرده بود یافت. هرچند آن کتاب خوب چیزی درباره سرزمین پریان نگفته بود و گفت همین کفایت می چرا که پریان دریایی هم مانند مردم سرزمین پریان از رستگاری به دورند. منابر این کسی را به سراغ زنگ و شم که لازم بود فرستاد. سپس رو به لیرازل کرد و در حالی که از روی کتاب واجه هایی را می‌خواند که میبایست آن رویداد نادر فرخونده به کار میگرفت دستور داد صادقانه با هر چیز وابسته به سرزمین پریان وداع کند و با سوگند آنها را انکار نماید. لیرازل پاسخ داد ای نجات دهنده خوب هیچ یک از سخنانی که در این دشت گفته می شود نمیتواند از مرز سرزمین پریان بگذرد و خوشحالم که چنین است چون پدرم سه افسون دارد که اگر واجهی می میتوانست از سرحد شفق بگذرد میتوانستند در پاسخ یکی از تلسمهای های این کتاب تمامی آن را نابود کنند من هیچ تلسمی بر پدرم فرود نخواهم آورد نجات دهنده پاسخ داد اما من نمیتوانم مردی مسیحی را با یکی از خیر سران خارج از رستگاری عقد کنم سپس لیرازل به اصرار آلبریک نوشته کتاب را تکرار کرد و افزود هر هرچند ممکن است این تلسم در رویارویی با هر تلسم پدرم نابود و آنگاه زنگ و شم رسید و نیکمرد در خانه کوچکش آنها را با سنتهایی مناسب برای ازدواج یک پری دریایی که با دریا ودا کرده عقد کرد سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه‌ها قصه‌هایی از غول‌ها و کوتوله ها ماشره از جادوگران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 کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی